برای میرن مسابقه بهش تبریک که تولد 20 تا سالگی رو داشت سپرنده بیننده نمند. لطفش اونم به آراکی مسابقه منفرد بشه. همه درو قشنگه که به رفتن گردن توه یه روزی گریبانتو میگیره ای سر قبرش خوب بچه خواهر من رو سو سوزندی چال کردی و یه فاتح روز. اون مقبری پدرشه وقتی مهراد به دنیا اومد پدرش فوت کرد شکو و عاشقش بود همه ی زندگیش بود ولی قید شوهر زندگی رو زد و همه ی دارو ندارش رو از پای مهرات. خوب دارو ندارشو کردی زیر گل نگه شب اول قبل سختری شبه اون بچه فقط برند بود به خودش آزار برسونه. ندیدم یه نفر ازش بناری یا شکایتی داشته باشه. چطور تو همچین چین آدمی رو نفله کنی؟ چطور؟ من اون قبر و خودم خریده بودم. هر هفته که به زن مرحومم سر میزدم، روش بالام میپاشیدم. حالا باید برم اون بری رو بخارم واسه خودم. خوشحال باش. چون درد کمتر شد. این کاموغوستت هم مختعیه پس فردا یادت میره بهت گفتم حواست نواشی این بچه طرف میشه بهت گفتم یک پار کن که نتونه بری دونبالیمون بازی نکمتی مرگ مهران مقصر زیاد داره یکی نانش یکی هم آنجش ولی مقصر اصلی توی خون دامن گیره خون به دست از سر زندگی در نمیداره فکر نکن به همین راحتی چالیش کرده به یه خلبار خواهد بختم رو سرش رفتید این پسر نیستن صاحب نبود زندگی آرومی نخواهید داشت دختر خونه این خون دامن تو و خاندانتو میگیره مطمئن باش فیرس دیون دیونه پرویزه برای وصولش کاری کردیم؟ نه خانم آقا فرموده بودن دست نگرد داریم با آدمات بگو بیان فرفور میفرسی سرابش پرویز و پولش کنن خانم حاله خانم کار دارن خانم خودشو هم کار دارن بذار بیت تو خانو از روزی که من این خبر نهست رو شنیدم یه چشم اش یه چشم خون خدا رحمتش کنه از طرفی هم خیلی دلم شور حال روز شما رو میزد من خوبم چی کار کردی؟ رفتی دو سه ساعت خبر بیاری گم و گور شدی؟ چی شد؟ دیر اومدم ولی دست پر اومدم زیر زیرو بمشو در رو آدم سرشناسیه تو شهر خودشون چهار سال حبس داشته هینه جا جابجایی جایی فرار کرد چیکار کار میکنه فراریه خانم اصنا که رو فردا میری ببینم چشم میدم فردا و اخویم شهروز بیاره خدمتت. باید جزت که با خودت خیلی برکست میاری چون این خونه البت این خونه خلافتر از اونیه که با وصلت این رو درست بشه سخفش رو درست کنی با اون چهاش رو میخوای چی کار کنی باری کنه خرمان باری دیگه خونه جای زندگی نیست من اینا مهبان خانم به روز نیست نیش نه ایمه دو روزه ندیدم گرفتاره میترسم این قصه استخون بشه بشینه تو جگرش اینه تنو و جون بودم، با خان تن میره جونم میمیره نه بیزه که در رو یه چیزی که براتون بیارم؟ مثلا که زحمته. اومدم، اومدم. کون نشبرم. صدای نازنی میه. اینجوری میگه. ولی دیشب داشم نمک می‌ریختم تو کفشمون که بریم. قایم از জাফরم خورم. یه خاکش به کار نیست. خوش میشه میماسی که فاستانبولی. بهانو. این یارو اسمش چیه؟ خسرخان. اما میخواد با ترس بزنه تو هستی منتظرته. برو دخترم این چی یان محبوب مثل ماه باید کم نور باشه و محجوب اینطوری به میشه میشیم مهربانو بیکن معتلش کن دستباله هم بهشونم یه سلام علیکی باش بکن چای درست کردم خوشمزه است چای قنبری بهتره ما بهتره ما شما ما داشو آدم قدبالای شما میبینه نره ایه بر میگه که من پلانو و بعدان شوار نمی به اون یارو ایه بردیگه سر میزه دو جا پاشم تو قیبت میخورم یه دنبالش از یه دیگه از که میگن جماعت نصفان میل مفردی به غیبت کردن دارن بیراه نمیگن زفرون خانو پشتر ما غیبت کردی حلالم کن خواهر هر چیزی نگفتم که حلالت کردیم حلال متباسه مونده بسن من به روز کس کاری نداریم من این بچه ها با چنگ و از آب و آتیش گذاروندم تو رسوندمش به اینجا آزه یا کشم میخواد بزرگترش باشی یه سخوی یه ضعیفه ای یه که تند بچه پس به اندازه یافت کن من من هم عمه بشم و ننجوم هم مادا جم شما بزرگی عزیزی نفست گرمه یافت بده یه کاری بشه یه وکیلی وزیری طبیبی یه مسکر علافی چیزی بشه یه فرمش مهمتر با پر عویس حرف بزن اصلا به من توجه نداری این باید پوشتان من هفت حالا خلالتون نمی کنم. نباید خواهی تو بابت این اتفاق ازیهت کنی به نظرم به نظرم صلاح برینه که یه چند وقتی برای مدت کوتاه این قرار مدارا رو به تعویق بندازید. به گردن من بود که نقل و بحث خونه عطا خان و ماجرای اون خدا بیامرز رو براتون روشن کنم. همون با کمی تفکر و تحقل میشد مانع این حادثه شوم شد نمیدونم اگر بخوین همه چی رو عقب بندرزین من حرفی ندارم همین کارو میکنم برمیگردم و تا هر موقعی که مقرر کردید و سلاح دونستید همونجا میمونم اما یه نظر منو بخواین این کار اشتباهی یه مراسم بی سر و صدا می گیریم و با هم می اگر مایل بودید اون یه جشن مفصل می گیریم. اگرم که نه را همین سیغه محرمیت پسند میکنیم انگار از در و دیوار می که این نباید سر بگیره انگار روزگار از چشمش بر نمیاد که ما رو به هم برسو قرآن سلام تصمیم بگیریم میذاریم این مدتی بگذاریم سلام علیکی سلام من بای جوزتون و رو خست میشم باید برم جایی آقا خانه آخرت باشه آقا خمین دیم دوتو ششت خود بزرخ هرشت زیاده چپ مکنی قیقات میتی باقال یاد بایده مراد صده بود مارت چنگ خدن این خمیل نموایی یارو مالوندش، در در سر آخره کمون در جنیزم مرک و توی کلم براش دست گرفتن میخونن براش تو که ماش زنی این برا زنی اون برا بزن این برا بزنی اون برا بزنی درست خیرتی چه به رین اونه چه به مسابقه میگن مسابقه صداقه قبلی هم به زور ماهی اومده بود چی میگیم ما شما عروض خواهد شوار؟ دانه گواله و بابای چی میگیم؟ برم مایه یه بابا حال نهاریم آشان خواهد براتو شما اصلا ندارید کاری بکنید معلومه نخیم بذارین قاتل مهرات همینجوری راست راست تو خیابان رابر رو بریشه شما خاندان مصافی در خانه باید تسلیم شما کار نکنیم مدام تو خاندان ما هر زنی از تا مرد مرد داره تو جوانی ایفی من خودم قاطع داریم من دلیشت. مثل شماها نیستم که هر که هر کاری درش خواست با من بکنه من مثل شماها نیستم شهرونده شمور شدیم دست مریزاد نه خوش آمد با جنمی خودت نم یخ کرده نمیدونم چی بهم افتاد یا زرنش به صفاتو بیا چه نه بگی به خاطر شان کنم ما چه تو مرام میس و این دفعه رو من اونم وای دست خوشته ناچریه با خاندان مصطفی سرستری داری داشتم اگه قلابت به ناگیره جات راش ما که یه عمره رو فرشیم روزگارمونم سیاست عطا بای که عاشناته آره پسر یه چایی بیار بالا آقا افتایی تو اثر سر باز چشم چارت با باشی به مثل جوغده بغلش کنی ولش کنی هرچش کشنه رفتیم پر پر حساب نمیاد کارش گوش و باج گیری و کاسه سپوزه و تلقی کردن که اون ورازه و عذیت آزاره کسابهای یه چند وقتی پاش به این محوله باز شده از عقل شروع بی بهره نقطه مخته درکش آره آلا آمید. آمیتی نمیاد. نمیدم شما با خانم سباید کن ترسم از این یه, یه چیزی بگه یه کاری بکنه با سمان گرون تماشه من همین رو قهوه قجری که نمیخوام تاروفش کنم اون برز و لابا میافته منم از گناهش میگذرم مطمئن باشید صده شنجا رو بروتون ببادن در درد دستادان عزیزتون تصکیب پیدا نمی کنه این آره دیگه اگه قول بده تمام پولمو کامل برگردونه از گناهش میگذرم من پول از خورگونش میکوشم بیدون تربیده شما میدم آره دیگه افای خانم هستن. نگاه به یک کلی این جمعه نکن خانوم اندازه از رفت کرده چیزش باید هر چشمشی کنید این برای گدرمدن شغلش نکرار میکنه ولی قصد کشتنه مردم او نداره محشای سنگینه فکر بمیکرم از شخص درده یه من در بیاد و اگر نگه این کار نمیشنه من با ناما تمامم لکهر خودتون رو گد و با دو تونم وقتش رو بود دلدانه. بخشش هم باید همه یکی از اون را سرفی ندارم برشگ برشگ باش نمیرم برشگ استخون که واسه سرگ میندازی تا آخر عمر واسه باق باق میکنه از پورتون بستلام من یا میبیرم یا میکنشم بهشی میرم اون چه تو رفتادنه سره بتنه اضافه کرده خانم نهارفان نشه بگیر. منگه نوچه رو زهر خرار دی کسی از از اینسان جاییم چی نگه یونون داید است است دادم بستلام باطل هم زکور و جلنبور و کمعقلی مثل تو هر عجی بهش نیست پول بردار مال خودت خانم اون پول مال شماست آبا دهلکی با بوزه سر کسی نردسه میشه بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ on him at آفرین دکترم معلوم خون مصطفی تو رقاته همه میتونستیم با قانون پدرشون رو در رویم تو چی ای؟ مگه تو مرجی قانونی؟ قفه آخرت باشه که این کار رو دخالت میکنیم امروز اگه به فتا نگفته بودم معلوم نبود چه بلایی سرمون میان اتوری بیا یه مدام میفرسمت یا جهنم دره جو چند چیز عدد نشد پس سز آقا چند تا سوتا رو میوفتین خونه واده مو خبر نداره کسی خبر نداشته باشه بهتره بعدن یکی رو میفرسم واسه چون یه دروغی سرهم هم کنم آقا من این نداره پده سوخته عزت خبری نبود کسی <laughs> بو نبره ها من دو بسوات جور کن خودتا بابو یه بار خواست باسه ما کاری کنیم <laughs> باشه سور خودتا هم فقط بقدر این شم بگوشی بیدتره بحبت آزاده خانو وعده و بو یه برابر می گفتفتی این گاب می‌زدی واسه تو چی کارش کردی؟ اه، اه، پسر یه صندلی بیار پرستادا بهش هم جایی که باید؟ با بقیهش رو میخوای چ کنی بقیهش کنونه؟ بشین چ بپ بشین بپ بفر گفتم با بقیه میخواای چ کنی تو میخوای نگاه کنی قاتل خار راست راست تو خیابون بچرخه؟ سویه و گماشته شما که خوب است پسیر مهم بر اومده. من از مصببه و اصلی حرف میزنم خاطر خودتون رو مقدر نکنی بیسمانتش به من من حقشون رو کپ دستش میزرم آینده خوبی در انتظار خاندانمون نمیبینم از آدم بی جلمی مثل تو نمیدونم چی در امتظارمونه کم لطفی میکنی سرکار خانمش شکل سلطنه قرصم از اینه که ایشو و و منصب جدیدت چنان تو رو تو خودش خرق کنه که یادت بره که این منصب از کی داری؟ از پسر ناکام من؟ مهراد ناکام من؟ دودمانشونو به باد میدم به باد میدیم؟ به بعد میدیم؟ تسیالتون راحت بباشید الو سلام علام علی خان. بله. خیالتون راحت آقا حتما خدمت میرسم به جناب وزیر بگید خیال مبارکشون آسوده باشه بنده امتصال ام کرده و به موقع خودم رو میرسونم باشه گفتم باشه خداحافظ شهازاد خانم البته واقفم که حرفای مهمی برای گفتن دارید ولی جلسه مهمی دارم که تا دیر وقت طول میکشه باید برم خدمت جناب وزیر میسپرم که ازتون خوب پذیرایی بشه خیالتون راحت باشه میام خدمتتون مفصل به گفتگو میشینی پدرشونو در میاری جد آبادشونو میاریم جلو چشمشون با اجازه ببخشید اگه جلسه امشب تا این انداز روحیم و ضروری نبود یقین یعنی بدونید که تنها تو نمیزاشتن. با اجازه Ey para vardı. Eri. Eri. Nece? Eri. Nece? Mira. Mira. Mira. Yemin. Ben hem miresim. Fahimidi? Beyfarman. Eri. Ohucu. Ohucu. Nats, nats, این خونه هرچی رسولی ضروری داریم بار بزنیم باید بریم به اون قیچی دست نزن شما خوبی. چیزی نیست نمی زخم ساعتی زود خوب میشه حد میزادن دست بردار نباشن اونه کین شطوری دارن تا زهرشون نریزن ولکن نیستن کجا بریم؟ <disconnected> فیلن حلال حساب قومم. اونجا چند ای عشنا دارم. من باید دارم یه نفر حرف بزنم. شما هم آماده باشی. شاید دیر بیام ولی میام. ما دیگه ما ها تعلیم کنیم. بریم. سب کنی برشون یه ما آب بیارم. نه دهی خوبه. دایی. کجا دار این اینا مشکلشون پول و بدهی نیست. ایرام که این بهانه را ازشون گرام با که فرسات یا پیدا کنیم با صرفتا آقای اومدن خانو به اسم محرم شوالچی میخواد شما رو ببینه چه دل اجارتی با پای خودش اومده تنهاست بله خانو تو چش خانو خیلی جنم داری سرسو آوردی تو دهن شیر اعمالی که از شما و اطرافیات سر میزنه منش شیر نیست رفتار کفتاره تو اومدی برای من شکو سلسنه مصرفی خط نشون بکشی اهل تهدید نیستم نمیترسم نمیترسونم از دین پرویز خان بیشتر نباشه کمتر نیست پات از رو گلوی این خانواده وردار چی فکر کردی محرم میشال؟ شالچی؟ فکر کردی درمون دل صفته و سلطنه مصطفی سنار سن یه پول توه؟ برو به ایلو تبارد بگو تا مرگتون رو به چشم ببینم آروم نمیشینم پیره مرد بی گناه گرفتین زیر کتک چی رو ثابت کنین؟ ما رو به ترسونین؟ نه اشتباه داریم ایش رو خانم یکی مثل من چیزی واسه از دست دادن نداره اومدی؟ مردونگی تو به رخو من بکشی؟ من و خواندانم به پلکین دودمانتونو میسوزنم رو میخواین حقتونه بردارین برین ولی ضعیف نه چیزونین چو آقابت نداره هوا برد داشته باورش شده که آفتاب خیلی آب برمیداره برای رسیدن به مهبانو بعد از رو جسد من چی؟ اگه ضرور رد داشته میشه رد میشم برای داشتن سیدی مثل تو فکر میکردم یه جماعتی رو باید سفیل و سرگردون کنم اصلا به مخیلم نمی نمیرسید که سید با پای خودش بیاد تو دام سیاد نمیخوام دستم به خون خاندانه دالو داشه پرش. ایو جان به چشم چشم چو هیچ به کام ما نشود تابم را دمدی ہمچو زمان موسیقی